قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير براستی الله سخن زنی را که در شوهرش بات و مجادله میکرد و به الله شکایت میبرد شنید و الله گفت شما را میشنید شنید الله شنوای بیناست الذين يظاهرون منكم من نسائهم وما هن امهاتهم ان امهاتهم الا ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُولٌ غَفُولٌ کسانی از شما که زنانشان را زهار آنان هرگز مادرانشان نیستند مادرانشان فقط کسانیند که آنها را زاده اند بیگمان آنها سخنی زشت و دروغ میگویند و همانا الله اف کننده آمرزگار است والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبه ف تحریر رقبه من قبل آیت ماست ذلكم تو به والله بما تعملون خبیر و کسانی که زنانشان رازهار میکنند کنند سپس از آنچه گفته اند باز میگردند. باید پیش از آمیزش جنسی با هم برده ای را آزاد کنند این حکمی است که به آن پند و اندرز داده میشوید و الله به آنچه چه میکنید آگاه است فمن لم یجد فصيام شهرین من قبل ان یتمنا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطَعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَهِ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم. پس کسی که برد ایرا نیابد پیش از آمیزش جنسی دو ماه پی در پی روزه بگیرد و کسی که نتواند پس شاست مسکین را تعام دهد این حکم برای آن است که به الله و رسولش ایمان بیاورید و اینها حدود و احکام الهی است و برای کافران عذاب درناکی است این الذين يحددون الله و رسوله كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب همانا کسانی که با الله و رسولش دشمنی میکنند خار و ذلیل میشوند شوند همانگونه کسانی که پیش از آنها بودند خار و ذلیل شدند و به راستی ما آیات روشنی نازل کردیم و برای کافران عذاب خار و رسوا کننده است یوم یبعثهم الله جمیعا فیونبیعهم بما عملو احصاه الله ونسوه والله على كل شهید روزی که الله همه آنها را برمی انگیزد پس آنها را از آنچه کرده اند با خبر می سازد. همان اعمالی که الله حساب آن را نگه داشته و آنها فراموشش کرده اند و الله بر همه چیز گواه و ناظر است أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 ان الله بكل شيء عليم مگر ندیدیک الله آنچرا که در آسمان ها و آنچرا که در زمین است میداند هیچ نجوایی میان سه نفر نباشد مگر آنکه او چهارمین آنهاست و پنج نفری نیست مگر آنکه او ششمین آنهاست و نه کمتر از آن و نه بیشتر مگر آنکه هر کجا باشند او همراه آنهاست، سپس روز قیامت آنها را به آنچه کرده اند با خبر می‌سازد. بیگمان الله به همه چیز داناست.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 و یقولون فی لولا یعذبون الله بما نقول حسبهم جهنم یصلونها فبئس المصیر ای پیامبر مگر ندید ای کسانی را از نجوا نه شدند سپس به آنچه از آن نهی شده بودند باز می و به گناه و تجاوز و نافرمانی پیام بر نجوا می کنند به هنگامی که نزد تو میآیند تو را تهیتی گویند با کلماتی که الله با آن تو را تهیت و سلام نگفته است و در دل خود می گویند چرا الله ما را به کیفر آنچه می گوییم عذاب نمی کند. جهنم برای آنها کافی است به آن وارد می شود پس آن بد سرانجام و جایگاهی است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 هنگامی که با یکدیگر نجوا می‌کنید، پس به گناه و تجاوز و نافرمانی رسول الله نجوا نکنید و به نیکی و پرهیزگاری نجوا کنید و از الله بترسید که به سوی او محشور خواهید شد. إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمین وليس بضار رهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون جزئی نیست که نجوا از سوی شیطان است. تا کسانی را که ایمان آوردند، اندوهگین گین سازد و جز به فرمان الله نمیتواند هیچ ضرری به آنها برساند پس مؤمنان باید بر الله توکل کنند یا ایوها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحو في المجالس ففسحو يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا شزو یرفع الله الذين آمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که به شما گفته شود در مجالس جا باز کنید پس جا باز کنید الله برای شما گشایش می آورد و هنگامی که گفته شود برخیزید پس برخیزید الله مقام و درجات کسانی را از شما که ایمان آورده اند و کسانی را که علم داده شده اند بالا می برد و الله به آنچه می کنید آگاه است <تصفيق> يايها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا ذلك خير لكم و اطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور الرحيم اي كسانك ايمان آورد ايد هنگامی که میخواهید با رسول الله نجوا کنید، پس پیش از نجوایتان صداقی در راه الله بدهید. این کار برای شما بهتر و پاکیزه تر است. پس اگر نیابید، بیگمان الله آموزنده مهربان است. آشفقتمان، تقدموا بین دهای نجواكم صدقات. فَإِذْ فا لم تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاتَ وَآتُوا الزَّكَاتَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ آیا از فقر ترسی که پیش از نجوایتان صدقاتی دهید؟ پس چون چونین نکردید و الله از شما درگذشت پس نماز را برپا دارید و زكاه را ادا کنید و الله و پیامبرش را اطاعت کنید و الله به آنچه میکنید آگاه است الم <قلوم> تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ای پیامبر آیا ندیدی کسانی را که دوستی کردند با قومی که الله بر آنان خشم و غضب کرده است آنها نه از شما هستند و نه از آنان و بر دروغ سوگند یاد می‌کنند که مسلمان هستند در حالی که خودشان میدانند که منافق هستند عد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعمن الله عذاب سختی برای آنها آماده کرده است بی گمان بد است آنچه انجام میدادند اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله فلهم عذاب مهیم آنها سوگندهای های خود را سپر قرار دادند پس مردم را از راه الله باز داشتند لذا برای آنها عذاب خار کنندی است لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئه اولئیک اصحاب النار هم فیها خالدون هرگز اموالشان و فرزندانشان چیزی از عذاب الله را از آنها دفت نخواهد کرد آنها اهل آتش دوزخند و جاودانه در آن میمانند یوم یبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون روزی که الله همه آنها را برمیانگیزد پس آنها برای نیز سوگند یاد می کنند گونه که امروز در دنیا برای شما سوگند یاد می کنند و گمان می کنند که بر چیزی سودمند هستند آگاه باشید و بدانید که آنها دروغ گویانند استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون شیطان برانها چیره شده پس یاد الله را از خاطر آنها برده است آنها حزب شیطان هستند و آگاه باشید و بدانید که حزب شیطان زیانکارانند این الذين يحدون الله ورسوله اولئك في الاذلين بیگمان کسانی که با الله و پیام برش مخالفت و دشمنی می آنها در زمره خارترین افرادند کتب الله لأغلبنن أنا و رسولی الله قوی عزیز الله مقرر داشته است که یقینا من و رسولانم پیروز می بی گمان الله نیرومند و شکست ناپذیر است لا تجد قوما یؤمنون بالله واليوم الاخر ودون من ح اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ ویدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم ای پیامبر هیچ قومی را که ایمان به الله و روز قیامت دارند نمییابی که با کسانی که با الله و رسولش دشمنی و مخالفت می‌ورزند دوستی کنند اگرچه پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا خیشاوندانشان باشند آنها کسانی هستند که الله ایمان را در صفحه دلهایشان نوشته است و به روحی از جانب خود آنها را تقویت و تایید نموده است و آنها را به باغهایی از بهشت وارد میکند که نهرها از زیر درختان انجاری است جاودانه در آن میمانند الله از آنها خشنود است و آنها نیز از الله خشنودند آنها حزب الله هستند آگاه باشید و بدانید همانا حزب الله رستگارانند بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سبحا لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای الله تسبیح می گویند و او پیروزمند حکیم است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 وقذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بی ایدیهم و ایدی المؤمنین فاعتبروا برویاء لیل او که کسانی از اهل کتاب را که کافر شدند با نخستین برخورد و گرد آوری لشکر از دیارشان بیرون راند گمان نمی کردید که آنها خارج چوند و خودشان نیز گمان می کردند که دشهای محکمشان آنها را از عذاب الله مانع می شود. پس عذاب الله از جایی که گمان نمی کردند به سراغشان آمد و در دلهایشان ترس و وحشت افکند به گونه ای که خانه های خود را با دست خود و با دست معمنان ویران می کردند پس ایدید وران عبرت گیرید. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. و اگر الله ترک وطن و آوارگی را بران مقرر نداشته بود یقینا آنها را در همین دنیا عذاب میکرد و برای آنان در آخرت عذاب آتش جهنم است ذلک بانهم شاق الله و و یشاق الله فإن الله شدید این آوارگی و عذاب به خاطر آن است که آنها با الله و پیام برش مخالفت و دشمنی کردند و هر کس با الله مخالفت و دشمنی کند پس بی گمان الله سخت کیفر است ما قطعتم من لینة او تركتموها قائمة علی اصولها فباذن الله ولیخزی الفاسقین آنچه از درخت خورما بریدید و یا آن را ایستاده بر ریشهاش باغی گذاردید به فرمان الله بود تا فاسقان را خار و رسوا سازد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 والله الله على كل شيء قدیر و آنچه الله از انوال آنها به پیام برش بازگردانده و بخشیده است پس بر آن انوال اسبی تاختید و نشطوری ولیکن الله رسولانش را بر هر کس بخواهد چیره میگرداند و الله بر هر چیز تواناست ما افا الله على رسوله من أهل القرى فللله وللرسول فللله وللرسول ولذل قربا واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولا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 و آنچه الله از اموال اهل آبادیها به پیام برش بازگردانده و بخشیده است پس از آن الله و رسول و خیشاوندان او و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است تا این اموال در میان ثروتمندان شما دست به دست نشود و آنچه که رسول الله به شما بدهد آن را بگیرید و از آنچه که شما را از آن نه کرده است پس خودداری کنید و از الله بترسید بیگمان الله سخت کیفر است لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُونَ من دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله هم الصادقون این اموال فی برای فقرای مهاجری است که از خانه و اموالشان بیرون رانده شدند از الله فضل و خوشنودی میطلبند. و الله و پیام برش را یاری می‌کنند آنها راستگویانند والذین تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم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 و می یقشح نفسی فاؤلایک هم المفلحون. و نیز برای کسانی که پیش از آنان در دیار خود جای گرفتند و نیز ایمان آورده بودند، کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست می‌دارند. و در دلهای خود از آنچه به مهاجران داده شده احساس حسد و نیازی نمیکنند و آنها را بر خود مقدم میدارند هرچند خودشان نیازمند باشند و کسانی که از بخل و حرس نفس خیش بازداشته داشته شده اند پس آنها رستگارانند والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ذلا للذين آمنوا ربنا, ربنا إنك رؤوف رحيم و نیز کسانی که بعد از آنها بعد از مهاجران و انصار آمدند میگویند پروردگارا ما را و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در دلهای من کینه ای نسبت به کسانی که ایمان آوردند قرار مده پروردگارا بیگمان تو را اوف و مهربانی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 با این قوتل تلنا و سررا نک آیا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران اهل کتابشان که کفر برزیده اند میگویند اگر شما را از سرزمینتان بیرون کنند ما نیز با شما بیرون خواهیم آمد. و هرگز سخن کسی را در مورد شما اطاعت نخواهیم کرد و اگر با شما جنگ شود البته یاریتان خواهیم کرد و الله گواهی می دهد که آنها دروغگو هستند. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قاتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون اگر آنها را از وطن بیرون کنند با آنها بیرون نمی روند و اگر با آنها جنگ شود یاریشان نخواهند کرد و اگر هم یاریشان کنند البته پشت به میدان کرده فرار می کنند سپس یاری نمی شوند لانتم اشد رَهْبَةً فی صدورهم من الله ذَلِكَ بانهم قوم لا يَفْقَهُونَ ای مؤمنان، همانا وحشت از شما در دلهای آنها بیشتر از ترسشان از الله است. این بدان سبب است که آنها قومی هستند که نمی فهمند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 آنها هرگز دست جمعی با شما نمیجنگند جز در آبادیها و دژهای محکم یا از پشت دیوارها نزاع و جنگشان در میان خودشان سخت است تو آنها را متحد میپنداری در حالی که دلهایشان پراکنده است این بدان سبب است که آنها قومی هستند که تعقل نمی کنند کمثل اللذین من قبلهم قریبا ذاقوا وبال أمرهم ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم داستان اینها همانند داستان است کسانی است که اندکی پیش از آنان بودند تعم عاقبت کار بدشان را چشیدند و برای آنها عذاب دردناکی است كما مثل إذ اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء ام منك اني اخاف الله رب العالمين هم داستان شیطان است هنگامی که به انسان گفت کافر شو پس چون کافر شد گفت بیگمان من از تو بیزارم من از الله پروردگار جهانیان میترسم فكان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها و جزاء الظالمین پس سرانجام کار هردوی آنها این شد که هر دوی آنها در آتش دوزخ خواهند بود جاودان در آن میمانند و این است کیفر ستمکاران يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وان نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اي كسانيك از الله بترسيد و هر کس باید بنگرد که برای فردا چه پیش فرستاده است و از الله بترسید بیگمان الله به آنچه انجام میدهید آگاه است ولا تکونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون و همچون کسانی نباشید که الله را فراموش کردند پس الله نیز خودشان را فراموششان ساخت آنها بدکار و نافرمانند لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب هم الفائزون هرگز اهل جهنم و اهل بهشت یکسان نیستند اهل بهشت رستگارانند لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله و الامثال لعلهم اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردین، یقیناً آن را از ترس الله خاک و از هم پاشیده می و این مسائل ها را برای مردم میزنیم شاید که بیندیشند هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم او الله است که جز او معبودی راستی نیست دانای غیب آشکار است او بخشنده مهربان است هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما عم يشركون او الله است که جز او راستی نیست پادشاه نهایت پاک منزه و سالم از هر عیب ایمنی دهنده نگهبان پیروزمند جبار و شایسته عظمت و بزرگی است الله پاک و منظه است از آنچه برای او شریک میآورند او الله الخالق البارق المصور له الاسماء الحسنا يسبح له ما و السماوات والارض وهو العزیز الحكيم او الله است خالق نوآفرین نقش بند نزیر برای او نام های نیک است آنچه در آسمان ها و زمین است تصبیح او میگویند و او پیروزمند حکیم است.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 في سبيل و بتغاء نرباتي تسررون اليهم بالموادتى و بما اخفيتم و ما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء ای کسانی که ایمان آورده اید دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید که با آنها طرح دوستی می افکنید در حالی که آنها به آنچه از حق برای شما آمده کافر شده اند و رسول الله و شما را به خاطر ایمان آوردن به الله که پروردگارتان است از شهر و دیارتان بیرون میکنند. اگر شما برای جهاد در راه من بیرون آمده اید و برای خوشنودی من هجرت کرده اید، هرگز پیوند دوستی با آنها برقرار نکنید. شما پنهانی با آنها پیوند دوستی برقرار می کنید در حالی که من به آنچه که پنهان می دارید و آنچه که آشکار می سازید داناترم. و هرکس از شما چنین کاری کند یقینا راه راست را گم کرده است، اي يسقفوكم يكون لكم اعداء او يبسطوا اليكم ايديهم وارسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون اگر آنها بر شما دست یابند دشمنانتان خواهند بود و به آزارتان دست و زبان میگشایند و دوست دارند که شما نیز کافر گردید لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم یوم القیامت یفصل بینكم والله بما تعملون بخیر هرگز خیشاوندانتان و فرزندانتان روز قیامت به حالتان سودی نخواهند داشت الله در میان شما جدایی می اندازد و الله به آنچه انجام میدهید بیناست قد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا برآء منكم و من لا إِلَّا قَوْلَ إبراهيم لأبيه لأستغفرن لَكَ وَمَا أملك لك مِن, الله من <تصفح> یا قیان برای شما سرمشق خوبی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند وجود دارد. آنگاه که به قوم خود گفتند ما از شما و از آنچه غیر از الله میپرستید بیزاریم. به شما کافر و منکر شده ایم و میان ما و شما برای همیشه عداوت و دشمنی آشکار شده است تا اینکه به الله یگانه ایمان آورید مگر آن سخن ابراهیم که به پدرش آزر گفت البته من برایت آمرزش طلب می کنم و در برابر الله برای تو اختیار چیزی را ندارم پروردگارا بار تو توکل کردیم و به سوی تو روی آوردیم و بازگشت همه به سوی توست ربنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا واغفر لنا ربنا انك أنت العزیز الحکیم پروردگارا ما را دست خوش فتنه کافران قرار مده و ما را بیامرز ای پروردگار ما بیگمان تو پیروزمند حکیمی لقد كان لكم فیهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر و من فإن الله هو برای شما در زندگی آنها ابراهیم و یارانش سرمشق خوبی است برای کسانی که امید به الله و روز قیامت دارند و هر کس روی گردان شود پس همانا الله بینیاز ستوده است عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديت منهم موده والله قدير والله غفور رحيم امید است که الله میان شما و کسانی از مشرکین که با آنها دشمنی داشتید پیبند دوستی برقرار کند و الله تواناست و الله آموزنده است لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الله شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما نجنگیده اند و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند نه نمی کند بیگمان الله عدالت پیشگان را دوست دارد این ما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و من دياركم و على إخراجكم أن تولّوهم <تصفيق> من يتولّهم تنها شما را از دوستی با کسانی نح می میکند که در امر دین با شما جنگیده اند و شما را از دیارتان بیرون کرده اند و بر بیرون راندن شما دیگران را کمک و پشتیبانی کرده اند و هر کس با آنها رابطه دوستی بگیرد پس آنان ستمکارانند یا <تصفح> ایها <تصفح> الذين اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُمْ ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم واليسالوا ما انفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم اي كسانيك ايمان اورديد هنگامی که زنان مؤمن هجرت کرده به نزد شما آیند پس آنها را آزمایش کنید الله به ایمانشان داناتر است پس اگر آنها را زنانی مؤمن یافتید آنها را به سوی کفار باز نگردانید نه آنها برای آنان حلالند و نه آنها برای اینها حلالند و آنچه را شوهران کافر خرج کرده اند به آنها بدهید و گناهی بر شما نیست که با آنها ازدواج کنید هرگاه مهریشان را به آنها بدهید و در صورت ارتداد از اسلام به عقد زنان کافر تمسک مجویید و آنها را رها کنید و آنچه را خرج کرده اید مطالب کنید و کافران نیز آنچه را خرج کرده اند مطالب کنند این حکم الله هست که در میان شما حکم می کند و الله دانای حکیم است. و این فاتکم شیء من ازواجکم وادکم إلى الكفار فعاقبت فأت الذين ذهبت ازواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي مؤمنون و اگر یکی از همسران شما به سوی کافران رفت آنگاه شما در جنگ برانان پیروز شدید و به انتقام از کافران برخاستید. پس به کسانی که همسرانشان رفته اند همانند آنچه خرج کرده اند بدهید و از خدایی که شما به او ایمان دارید بترسید یا <تصفيق> ایها بیو ایزا جاءک المؤمنات یبایعنک علاء لا يشرکن بالله شیئا ولا يسرقن ولا يزنین ولا يقتلن اولادهن ولا يأتین ببهتان يفترینه بين ایدیهن وارجلهن ولا ای <عرض> پیامبر، هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آمدند تا با تو بیعت کنند بر آنکه چیزی را با الله شریک نسازند، و دزدی نکنند و مرتکب زنا نشوند و فرزندان خود را نکشند و بهتان به افترایی را پیش دست و پای خود نیاورند که فرزندی را به دروغ به شوهرانشان نسبت دهند و در کارهای نیک نافرمانی تو نکنند پس با آنها بیعت کن و از الله برای آنها آمرزش بخواه بیگمان الله آمرزندی مهربان است يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخرة كما ياس الكفار من قومی که الله بر آنان خشم و غذب گرفته است دوستی نکنید آنها از آخرت معیوسند همان که کفار از گور خفتگان معیوس هستند بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است تسبیح الله می گویند و او پیروزمند حکیم است یا ایها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون ای کسانی که ایمان آورده اید چرا چیزی را میگویید که عمل نمی کنید گبرما الله تقولوا نزد الله سخت ناپسند و موجب خشم است آنکه چیزی را بگویید که عمل نمی کنید. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص الله کسانی را که چون بنیانی آهنین صف بسته در راه او پیکار میکنند دوست دارد وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا آذَاهُ أَذَاءٌ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَأيَّ هنگامی را که موسی به قومش گفت، ای قوم من، چرا مرا آزار و عذیت می‌رسانید؟ در حالی که میدانید بیگمان من فرستاده الله به سوی شما هستم، پس چون آنها از حق منحرف شدند، الله دلهایشان را منحرف ساخت و الله قوم نفرمان را هدایت نمی کند.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 فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. و یادآور باش هنگامی که عیسی پسر مریم گفت ای بنی اسرائیل بیگمان من فرستاده الله به سوی شما هستم آنچه از تورات که پیش از من بود تصدیق میکنم و نیز مجد دهنده به رسولی هستم که بعد از من می آید و نامش احمد است پس هنگامی که او با معجزه و دلایل روشن به سوی آنان آمد گفتند این جادویی آشکار است و من اظلم من من افترا علی الله الكذب وهو هو الى الاسلام و الله لا يهدی القوم الظالمین و چه کسی ستمکار تر است از آن کس که بر الله دروغ بندد در حالی که او به دین اسلام دعوت می شود و الله گروه ستمکاران را هدایت نمی کند یریدون لطوف نور الله بافوههم والله مطمون نوری ولو كری الكافون آنها میخواهند نور الله را با دهان خود خاموش کنند ولی الله کامل کننده نور خیش است هرچند کافران خوش نداشته باشند. هو الذي ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین كله ولو كره المشركون او كسیاست که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان غالب گرداند هرچند مشركان خوش نداشته باشند یا ایها الذین آمنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب الالم ای کسانی که ایمان آورده اید آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک نجات می دهد تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون و, و في سبیل الله بی اموالكم و انفسكم خیر لكم این كنتم تعلمون به الله و پیام برش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه الله جهاد کنید اگر بدانید این کار برای شما بهتر است. یغفرلکم ذنوبکم ويدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار ومساكن طيبه فی جنات عدم. ذالک الفوز العظیم اگر چون این کردید، الله گناهانتان را میبخشد. و شما را در باغهایی از بهشت وارد می کند که نهرها از زیر درختان آنجاری است و در خانه های پاکیز در بهشت جاویدان جای می‌دهد. این کامیابی بزرگی است و اخرات حبونها نصر من الله و فتح قریب و المؤمنین و نعمت دیگری که آن را دوست دارید نیز به شما انایت میفرماید فرماید که آن یاری از سوی الله و پیروزی نزدیک است و مؤمنان را به این پیروزی بشارت ده یا ایوها الذین آمنوا کنوا الله کما قال عیس بن مریم للحواری کما قال عيسى بن مريم للحواریین من أنصاری الى الله قال الحواریون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرار کفر آمنوا ای کسانی که ایمان آوردید اید یاوران دین الله باشید همان گونه که عیسی پسر مریم به هواریون گفت چه کسانی یاوران من در دعوت به سوی الله هستند؟ عواریون گفتند ما یاوران دین الله هستیم پس گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروهی کافر شدند آنگاه ما کسانی را که ایمان آورده بودند بر دشمنانشان قوت و توانایی دادیم و سرانجام پیروز شدند بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است تسبیح الله می گویند. الله که فرمان رواه پاک پیروز مند حکیم است.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 او کسی است که در میان درس ناخوانندگان رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها میخواند و آنها را پاک و تسکیه میکند و به آنان کتاب و حکمت میآموزد و اگرچه پیش از این در گمراهی آشکار بودند واخرین منهم لم ما بهم وهو العزیز الحكيم و نیز این پیام بر بر گروه دیگری از آنان برانگیخته شده که هنوز به آنها نپیوسته اند و او پیروز پیروزمند حکیم است. ذالک فضل الله يؤتيه من یشاء والله ذو الفضل العظیم این فضل الله است که آن را به هر کس که بخواهد میبخشد و الله دارای فضل عظیم است. مثل الَّذِينَ حُمِّلُ التَّورَاتَ ثم لم يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا أسفارا مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا كذبوا بآيات اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يهدي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ مثل کسانی که به مکلف شدند آنگاه بر نداشتند انرا. هم چون خریست که کتاب هایی را حمل می کند اما از آن چیزی نمی فهمد چه بداست است مسئله گروهی که آیات الله را تکزید کردند و الله گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. قل يا آیا الذين آیا آیا زعمتم آیا آیا لله من دون الناس فتمنوا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا اگر گمان دارید که تنها شما دوستان الله هستید نه مردم دیگر پس آرزوی مرگ کنید اگر راست میگویید ولا یتمنوننه ابدا بما قدمت ایديهم والله علیم بالظالمین ولی آنها به خاطر آنچه از پیش فرستادهاند هرگز آن آرزو را نخواهند کرد و الله ستمکاران را خوب میشناسد. قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه فا ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون ای پیام بر بگو بیگمان آن مرگی که از آن فرار میکنید یقینا به شما خواهد رسید سپس به سوی الله آن دانای غیب و آشکار بازگردانده میشوید آنگاه شما را از آنچه انجام میدادید خبر میدهد. یا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذر البيع ذلکم خیر لکم کنتم تعلمون ای کسانی که ایمان آوردی اید هنگامی که در روز جمعه برای نماز از آن گفته شد به سوی نماز و ذکر الله بشتابید و خرید و فروش را رها کنید اگر بدانید این برای شما بهتر است فإذا فا قضيت الصلاه فانتشروا فا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون پس هنگامی که نماز پایان یافت برای کسب رزق روزی در زمین پراکنده شوید پس فضل الله طلب کنید و الله را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید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 برخی از این مردم هنگامی که تجارتی یا سرگرمی را ببینند به سوی آن پراکنده میشوند و تو را ایستاده بر منبر رها می کنند بگو آنچه در نزد الله است بهتر از سرگرمی و تجارت است و الله بهترین روزی دهندگان است بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكالبون هنگامی که منافقان تو آیند گویند. ما گواهی می‌دهیم که یقینا تو فرستادی الله هستی و الله میداند که بیگمان تو فرستادی او هستی و الله گواهی می‌دهد که منافقان یقینا دروغگو هستند اتخذوا ایمانهم جنتا فصدوا عن سبیل الله این نه ساء ما کنون آنها سوگندهای خود را سپر قرار دادند پس مردم را از راه الله باز داشتند راستی کار بسیار بدی انجام می دهند. ذلك آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. این بدان خاطر است که آنها ایمان آوردند سپس کافر شدند آنگاه بر دلهایشان مهر نهاده شد پس آنها در نمی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 و هنگامی که آنها را ببینی جسم و قیافشان تو را به شگفت آورد و اگر سخنگویند به سخنانشان گوش فرامیدهی گویی آنها چوبهای تکیه داده به دیوارند هر بانگی را علیه خود میپندارند آنها دشمن واقعی هستند پس از آنان برحضر باش الله آنها را بکشد چگونه از حق منحرف میشوند و اذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لن لوو رؤوسهم و رأیتهم یا صدون و هم مستكبرون. و هنگامی که به آنها گفته شود بیایید تا رسول الله برای شما آمرزش بخواهد سرهای خود را تکان میدهند و آنها را میبینی که از سخنان تو اعراض میکنند و تکبر میبرزند ان علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لينغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين برای آنها یکسان است که برایشان آمرزش بخاهی یا آمرزش نخواهی الله هرگز آنان را نمیبخشد بیگمان الله قوم نافرمان را هدایت نمی کند اوم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ینفذوا وللله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يثقهم آنها کسانی هستند که میگویند بر آنان که نزد رسول الله هستند چیزی انفاق نکنید تا پراکنده شوند و حال آنکه خزائن آسمان و زمین از آن الله است منافقان در نمی یابند يقولون لئن رجعنا الى المدينه يخرجنا الاعز منها الاذل ولله العزه لرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون انها می اگر به مدین بازگردیم یقیناً صاحبان عزت زلیلان را از آنجا بیرون می کنند در حالی که عزت از آن الله و فرستادی او و مؤمنان است ولی منافقان نمی دانند yeah. ايها الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون اي كسانيك ايمان اورد عيد اموالتان و فرزندانتان شما را از یاد الله غافل نکند و هر کس که چنین کند پس آنان زیانکارانند و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا تنی الى اجل قریب فأصدق و من الصالحین و از آنچه به شما روزی داد ایم در راه الله انفاق کنید پیش از آنکه مرگ به سراغ یکی از شما آید پس بگوید پروردگارا. ای کاش مرگ مرا مدت کمی به تأخیر میانداختی تا در راه تو صدقه بدهم و از صالحان باشم ولی يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون و الله هرگز مرگ کسی را هنگامی که عجلش فرار رسد به تأخیر نمی اندازد و الله به آنچه می آگاه است. تسبح لله ما فی السماوات وما ما فی الارض له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدیر آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همه تسبیح الله می گویند فرمان روایی از آن اوست و سپاس و ستایش نیز از آن اوست و او بر همه چیز تواناست. است او الذی خلقکم فمنکم کافر و <منكم> مؤمن والله بما تعملون بصیر او کسی است که شما را آفرید پس گروهی از شما کافرند و گروهی از شما مؤمن هستند و الله به آنچه می کنید بیناست خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير آسمانها و زمین را به حق آفرید و شما را در رحم مادرانتان شکل و صورت بخشید پس شکل و صورتتان را نیکو و زیبا گرداند و بازگشت همه به سوی اوست یعلم ما في السماوات والأرض و ما تسرون وما تعلنون والله عليمون بذات الصدور آنچرا که در آسمانها و زمین است می و و آنچرا که پنهان می دارید و آنچرا که آشکار می کنید می و الله از آنچه در سینه هاست آگاه است. اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ آیا خبر کسانی که پیش از این کافر شدند به شما نرسیده است، پس آنها تعم کیفر کار خود را چشیدند و برای آنها عذاب دردناکی است.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 این بدان سبب است که پیام برانشان با معجزات و دلایل روشن به سوی آنان آمدند پس آنها از روی تکبر گفتند آیا بشری مانند ما میخواهد ما را هدایت کند؟ آنگاه کافر شدند و روی گرداندند و الله از آنها و ایمانشان بی نیاز بود و الله بی نیاز ستوده است کسانی که کافر شدند گمان بردند که هرگز برانگیخته نخواهند شد ای پیامبر بگو آری به پروردگارم سوگند یقینا همه برانگیخته خواهید شد آنگاه از آنچه میکردید به شما خبر خواهند داد و این کار بر الله آسان است فآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي انزلنا والله بما تعملون خبیر پس به الله و پیامبرش و نوری که نازل کرده ایم ایمان بیاورید و الله به آنچه میکنید آگاه است یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلك یوم التغابل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 ذلك الفوز العظیم روزی که همه شما را در محشر گرد می آورد، آن روز روز نیست. و هر کس به الله ایمان آورد و کارهای شایسته انجام دهد گناهان او را می بخشد و او را به باقهای از بهشت وارد می کند که نهرها زیر درختان است جاودانه در آن می مانند. این کامیابی بزرگ است وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اولائکه اصحاب النار خالدین فیها وبئس المصير. و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند آنان اهل آتش دوزخند که جاودان در آن میمانند و بد سرانجام است. ما اصاب من مصیبت الا بی اذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه والله بكل شيء هیچ مصیبتی به انسان نمی رسد مگر به حکم و فرمان الله و هر کس به الله ایمان آورد الله قلبش را هدایت می و الله به همه چیز داناست و الله واطیع الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَ الْبَلَاغُ الْمُبِينِ الله را اطاعت کنید و رسول الله را اطاعت کنید پس اگر روی بگردانید بدانید که بر فرستادی ما وظیفه ای جز ابلاغ آشکار نیست الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله کسیست که هیچ معبودی به حق جز او نیست پس مؤمنان باید بر الله توکل کنند ای ایها من ازواجكم واولادكم عدو ولكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم ای که ایمان آوردید به راستی بعضی از همسرانتان و فرزندانتان دشمنان شما هستند پس از آنها برحذر باشید و اگر عفو کنید و چشم بپوشید و ببخشید بیگمان الله آموزنده مهربان است اینما اموالکم و فتنه والله عنده اجر عظیم جز این نیست که اموالتان و اولادتان مایه آزمایش هستند و الله هست که پاداش بزرگ نزد اوست فتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون پس تا جایی که میتوانید از الله بترسید و گوش دهید و فرمان برید و انفاق کنید که برای خود شما بهتر است و کسانی که از بخل و هرس نفس خود مسون بمانند آنانند که رستگارند این تقرض الله برضاً حس ای و باعف لكم والله شكور اگر به الله قرض الحسن بدهید. آن را برای شما افزون می کند و شما را بیامرزد و الله قدر شناس بردبار است. عالم الغیب و شهت دانای پنهان و آشکار و پیروزمند حکیم است. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصو العدة واتقوا الله ربكم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 لا تدری لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ای پیامبر هرگاه خواستید زنان را طلاق دهید پس آنها را در زمان آغاز عده طلاق دهید به حساب عده را نگه دارید و از الله که پروردگار شماست بترسید نه شما آنها را از خانه بیرون کنید و نه آنها بیرون روند مگر آنکه کار زشت آشکاری مرتکب شوند و این حدود الله است و هرکس از حدود الله تجاوز کند پس مسلما به خود ستم کرده است تو نمیدانی، شاید الله پس از آن وضع تازه‌ای فرا هم آورد که به صلح و آشتی منجر شود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 و من الله یجعل له مخرجه پس چون آنها را طلاق دادید و عده آنها به سر رسید آنها را به طرز شایستهای نگه دارید یا به طرز شایستهای از آنها جدا شوید و دو فرد عادل از خودتان را گواه بگیرید و شهادت را برای الله برپادارید این است که کسی که به الله و روز قیامت ایمان دارد به آن پند و اندرز داده می شود و هر کس که از الله بترسد الله راه نجاتی برای او قرار میدهد. دهد و من حیث لا يحتسب و من على الله فهو حسبه این الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء و او را از جایی که گمان ندارد روزی میدهد و هر کس بر الله توکل کند پس همان او را کافی است بی گمان الله فرمان خود را به انجام میرساند مسلما الله برای هر چیزی اندازهای قرار داده است. وَاللَّا إِنْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُمَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّا لَمْ يَحِضْنُ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ و من یتق الله یجعل له من امره یسرا و کسانی از زنانتان که از عادت ماهان معیوس شده اند اگر شک کردید ادهی آنها ماه است و نیز آنها که هیز نشده اند و ادهی زنان باردار این است که بار خود را بگذارند و هر کس از الله بترسد الله کارش را برایش آسان میسازد. ذالک أمر الله انزله وليكم ومن من يتق الله يكثر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. این فرمان الله است که بر شما نازل کرده است و هر کس از الله بترسد. الله گناهانش را از او میزداید و میبخشد و پاداش او را بزرگ میگرداند اسكنوهن من حیث سكنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن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 و این تعاسرتم فستردع له اخرى. آنان را در حد توانتان هر جایی که خودتان سکونت دارید سکونت دهید و به آنها زیان نرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید و پیش از پایان اده مجبور به ترک منزل شوند و اگر باردار باشند نفقه آنها را بدهید تا آنکه حمل خود را بگذارند پس اگر فرزندتان را برای شما شیر میدهند، مزدشان را بپردازید به این کار را به نیکی و با مشورت همدیگر انجام دهید و اگر به توافق نرسیدید پس زن دیگری به درخواست شوهر او را شیر دهد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 سید جعل آنان که دارا و ثروتمند هستند باید از دارایی و ثروت خود انفاق کنند و کسی که تنگ دست است پس باید از آنچه که الله به او داده انفاق کند. الله هیچ کس را جز به اندازه توانایی که به او داد مکلف نمی کند الله به زودی بعد از سختی و تنگ دستی آسانی و گشایش قرار می دهد. و من قریت عتت عن أمر ربها و رسله فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا، چه بسیار اهالی آبادیها که از فرمان پروردگارشان و فرمان پیام بران او سرپیچی کردند پس ما به شدت از آنها حساب کشیدیم و به عذابی سخت و سهمناک آنان را عذاب کردیم امرها و و امرها خسرا. پس آنها تعم عقوبت کار خود را چشیدند و سرانجام کارشان زیان بود اعد الله لهم عذابا شدیدا فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله إليكم لکرا الله عذاب سختی برای آنها آماده کرده است پس ای خیرد که ایمان آوردید. از الله بترسید محققا الله ذکر را به سوی شما نازل کرده است رسولاً یتلو عليكم آیات الله مبینات لیخرج الذین آمنوا و عمل الصالحات من الظلمات النور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 و نیز پیامبری به سوی شما فرستاده که آیات روشن الله را بر شما میخواند تا کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند از تاریکی ها به سوی نور بیرون آورد و هر کس به الله ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد الله او را به باغ های از بهشت وارد می کند که از زیر درختان آن نهر است جاویدانی در آن بمانند به راستی الله رزق و روزیش را نیکو گردانیده است الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لِتَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَاَنَّ اللَّهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا الله همان کسی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آنها را آفرید و فرمان الله پیوسته در میان آنها نازل می تا بدانید که الله بر هر چیز تواناست و آنکه علم الله بر همه چیز احاطه دارد بسم الله الرحمن الرحیم یا نبی ما احل الله لك مرضات والله غفور رحیم. ای پیامبر چرا چیزی را که الله بر تو حلال کرده است به خاطر خوشنودی همسرانت بر خود حرام میکنی و الله آموزنده مهربان است. قد فرض الله لكم تحلة أیمانكم والله مولاكم وهو العلیم الحكيم بهراستی الله راه گشودن سوگندهایتان را برای شما مقرر داشته است و الله دوستدار و مولای شماست و او دانای حکیم است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 و هنگامی که پیامبر به بعضی از همسرانش سخنانی را براز گفت پس چون آن همسر آن را به دیگری خبر داد و الله او را بر آن آگاه کرد قسمتی از آن را برای او بیان کرد و از قسمتی دیگر خودداری نمود پس هنگامی که پیامبر او را از آن خبرداد گفت چه کسی این را به تو خبر داده است پیامبر فرمود الله دانای آگاه مرا خبر داده است ای همسران پیامبر ذَلِكَ اگر شما دو نفر به درگاه الله توبه کنید به سود شماست بیگمان دلهایتان از حق منحرف گشته است و اگر شما دو نفر بر علیه او هم دست شوید پس بدانید که الله یاور و مولای اوست و نیز جبرئیل و مردمان شایست از معمنان و فرشتگان نیز بعد از آن پشتیبان و مددکار او هستند قلق کن أن يبدله أزواجا خيرا من کن مسلمات مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات و ابکارا چه بسا اگر شما را طلاق دهد، پروردگارش همسرانی بهتر از شما برایش جایگزین گذین کند؟ که مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، بردار، توبکار، عبادت کننده، روزدار، بیوه و دوشیزه باشند یا ایوها الذين آمنوا قو انفسكم و نارا وقودها الناس والحجاره وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ مَا, أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خودتان و خانوادهتان را از آتشی که آن مردم و سنگ هاست نگه دارید، آتشی که بر آن فرشتگان خشن و سخت گیر گمارده شده که هرگز الله را در آنچه به آنان فرمان داده نافرمانی نمی‌کنند و هرچه فرمان میابند انجام میدهند، یا ایوها الذین كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون ای کسانی که کافر شده اید امروز عذر خواهی نکنید جز این نیست که در برابر آنچه می کردید جزا داده میشوید.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 نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون يقولون ربنا اتمم لنا نورنا وارف لنا انك على كل شيء قدير اي كساني که ایمان آوردید به سوی الله توبه کنید توبه ای خالص امید است پروردگارتان گناهانتان را از شما بزداید و شما را به باقهای از بهشت که نهرها زیر درختان آنجاریست وارد کند روزی که الله پیامبر و کسانی را که با او ایمان آوردند اند خار نمی کند نورشان پیشاپیش آنان و سمت راستشان در حرکت است. بیگویند پروردگارا نور ما را به تمام و کمال برسان و ما را بیامرز بیگمان تو بر هر چیز توانایی یا ایوها النبی جاهدی الكفار والمنافقین واغلظ عليهم ومأواهم جهنم و المصیر ای پیامبر با کفار و منافقان جهاد کن و بر برانها سخت بگیر و جایگاهشان جهنم است و بد جایگاهی است برب الله مثلا للذین کفر امرأة نوح و امرأت لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما هما فلن یغنیه عنهما من الله شیئا و قیل دخل النار مع الداخلین الله برای کسانی که کافر شده اند همسر نوح و همسر لوت را مسل زده است که آن دو در نکاه دوتن از بندگان صالح ما بودند، پس به آن دو خیانت کردند، آنگاه آن دو بندی صالح نتوانستند چیزی از عذاب الله را از آن دو دفت کنند، و به آن دو گفته شد، همراه وارد شبندگان به آتش جهنم وارد شوید،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 و الله برای کسانی که ایمان آورده اند همسر فران را مسل زده است هنگامی که گفت پروردگارا خانه ای برای من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و کردارش نجات بده و مرا از قوم ستمگر رهایی بخش و مريم بنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بنی از مریم دختر عمران را مسل زده که شرمگاه خیش را پاک نگه داشت پس ما از روح خود در آن دمیدیم و او کلمات پروردگارش و کتاب های او را تصدیق کرد و از فرمانبرداران بود